سلام، شما قسمت سفرم پادکست علف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از یک نمایش خواهد بود شاید صدای من رو در میتنایت کس شنیده باشید اونجا براتون به شکلی نسبتاً امیق و روایی از سینما، رسانه و تلویزیون میگم و شما هم لطف داشتید و میتنایت کس رو گوش دادید حالا میتنایت با افتخار تا به حال 150 هزار بار شنیده شده و استقبال شما من رو به فکر تولید و پخش پادکست دوم خودم به همراه دوستانم انداخت که چند ماه داره روش کار میشه و حالا به جایی رسیده که شما قسمت سفرم اون رو گوش کنید. خیلی زود قسمت اول پادکست الفم منتشر خواهد شد ولی این قسمت مقدمه ای بر پادکست علفه. من تالیف کننده پادکست علف در کنار دوستانی که در نوشتن متن های هر قسمت این پادکست کمک کردند هدفمون آشنایی آدما با نمایشنامه و به طور کلی تئاتر. می‌خايم که با فرم روای مد نظرمون در هر قسمت من یک نمایشنامه براتون بخونم ولی کار من و دوستانم نمایشنامه خانی نیست. این پادکست داستان و سیر اتفاقات یک نمایشنامه رو برای شما میگه و اگر لازم باشه تحلیلی از اونها بهتون ارائه میده. هر جا هم نیاز باشه های نمایشنامه رو برای شما خواهم خوند. و هر جا که لازم باشه صرفا به تعریف حوادث و اتفاقات اکتفا میکنم یعنی شما خیالتون راحت باشه نمایی که این پادکست سراغشون میره رو به بهترین شکل ممکنش حداقل از نظر ما خواهید شنید بعد از شنیدن هر قسمت از پادکست الف شما باید اطمینان داشته باشید که یک نمایشنامه نمای رو به صورت کامل شنیدید و اگر وقت کنید اون نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون هم بخونید که چه بهتر ولی اگر دیگه سراغش هم نرید حداقل با اون نمایشنامه آشنایی دارید این نکته هم بگم که الف سراغ نمایشنامه‌هایی میره که ارزش روایت شدن دارند و خوندنشون هم تحمل برانگیزه هم جذاب و گوش دادنشون هم ارزشمنده شاید یک مقداری در نگاه اول کار سخت و پیچیده‌ای بیاد ولی روی ایده کار شده و سعی شده که اتفاق خوب و جدیدی در دنیای پادکست فارسی بیفته لطفاً شما که قبلا میتونید کس رو شنیدید و یا اینکه از ایده و کار پادکست الف خوشتون اومده اولین قدم رو برای حمایت از الف بردارید و توی تمام شبکه های اجتماعی آیدی الف پادکست یعنی A-L-E-F پادکست رو دنبال کنید. آدرس توییتر، تلگرام و اینستاگرام پادکست همینه و در توضیحات پادکست هم لینکشون قرار گرفته. این پادکست علاوه بر که روی فید میتناید کست در تمام اپلیکیشن های پادکست منتشر میشه روی فید اختصاصی خودش هم منتشر میشه. و لطفاً لطفاً لطفاً همین الان در حال گوش دادن به قسمت صفر یا در اولین فرصت بعد از شنیدن این قسمت برید و با جستجوی پادکست الف به فارسی یا الف پادکست به انگلیسی پادکست الف رو پیدا کنید و سابسکرایب بشید. زحمت و فکر زیادی پشت هر اپیزود پادکست الفه و حمایت شما واقعاً باعث دلگرمی تیم سازنده الفه. اگر تئاتری هستید و به تئاتر رو نمایشنامه و به طور کلی هنر علاقه دارید، لطفا به دوستانتون که مثل خودتون علاقه منند هستن پادکست تعلف رو معرفی کنید و یا حتی اگر علاقه من نیستند این شانس رو با معرفی پادکست تعلف به ما بدید تا شاید دوستانتون رو علاقه مند به نمایشنامه بکنیم. اگر سوالی دارید یا نظری دارید یا حتی انتقادی دارید زیر پست صفحه اینستاگرام پادکست و یا در توییتر پادکست تعلف اون رو مطرح کنید. منتظر پخش اولین اپیزود الف باشید، این نقش ماند از قلمت، یادگار عمر.